اللهم درايهم اللهم الله لا قوه الا بالله المشاهدين خبر واحد به عمدترین آیه ای که در اصطلاح اصولی وارد شده آیه نفر که تلاوت شد و خونده شد و از هم تا مزموز استاد هم به نظر مبارکشون استدلال بینانی مبارکه بهتر آیه نبره و از شد که دید اهل سنه حتی از چیه مثل مرحوم سیر موندزا در کتاب از ذریعه بیشون که از همین آیه نبر رو گرد آیه نبر آیه نفر هم چرا در اما افتداعا همین آیه نفر رو آورده باشیم و از اهل سنتم مثلا ابن حض این سقط آیه نفر رو آورده آیه نبر رو برای منطوبش آورده که اگر آیه نبر رو مقبول بکنیم تقیید دیزن اطلاق این آیه از کنم که راجع به استدلال با آیه نفر آیه نفر و که افتداعا کلمات مرموم استادتون به عنوانی کتاب مثلا درسی و مراجع آقایان بعض صحبت هایی که هست و مطالبی البته در خلال کلماتی ایشون بعض مطالب رو هم از این ایشون فهموزن که استدلال بین آیه مبارکه با چند تا مقدمه داره و از کلیم مطالب رو از مرموم استادش و های نایین گرفت مقدمه اول این بود که روزه این بس رو از کلمه یومدرو گرفتن اما از کلمه به نحضه سنت و شیعه کسایی در اصول بین تمثل کردن از کلمه طایفه که طایفه بیگنفر گفته میشه یا نه اینا ایشون از این راه وارد نشده ایشون از این راه که یومدرو این انزار جمعه و مرار کل واحده انزار رو کنه برای قوم رو بله نه اینکه مجموع برای مجموع خم آم آم مجموعی نیست آم استقرابی این توضیح خودش مقدمه دوبوم هنیفون المراد من الحضر باید تحفظ و تجنب عملی خب این محل اشکاله از قدیم هم محل اشکال بوده چیز تازه نیست ایشون میفهمن مراد حضر را عمل کردن تسلط این خودش اشکال در همینجاست ما گومسه از مرتضی در کتاب ذریعه میگه حذر غیر از عمله حذر غیر انسان به بهش لوکس تنمال میکنه بررسی بکنه, بکنه اینا اول این طور گفت به میگه شواهد موعدلش نه تا برای او به اصرار ایننا پیدا میکنه این مطلبی رو که موذر گفته درسته و اون با عمل رو لهون ازون ازون میگه خدا نره لا اله الا عملو عمل غیر از خدا حالا استاد و مرحوم نای دیگری‌ها کسانی که میکن تمسک بایی بکنن پس یک مقدمه هم این است که حذر تحفظ و تجنب عملی است نه مجرد خوف نحسانی این مجرد از که خود این مقدم محده اشکاره این ناظر به کسانی که حذر رو در اینجا به معنی خوف نحسانی گرفن ایشون میگه فهم این ایشون میگه ظاهبه در امس ها و در و اخد المعمن من هال محلکه ول عقوبه و عمل مرا از حذر عمله نه مراد از حذر حالت خوف نشد مقدمه سوم ان یکون حذر واجب و تجنب واجب عند انذار منظر. اینم اشکال سر کلمه لعلل چون لعلل در بر وجوب نمیکنه نه لیا حذر لا هم حکم دارد راه هایی رفتن در اینکه اینجا حذر معنای وجوبه دیگه شب ایشون بله ایشون از این راه وارد کنید که کلمه لعله ظاهر است که ما بعدش غایت برای ما قبلشه تمایت هر مراجعت موارد استعمال حضرت کردم لعله در غیرین هم استعمال سوید لكن استعمال شایعش همینه جنبه قایت استعمال شایعشه نه اینکه دائمیش باشه بعد ایشون می که استوان در امور خارجی باشه مثل اشترهی تو دارن لعلی از کنها لعلی یعنی غایتی بود که تو اون خونه زندگی بکن اوفی مقام ویان الاحکام مغربیه و در مقام احکام مغربیه تارتن اون غایت وابد تعلق تکلیف ما نیست مثل طب الالله هم لعله هو یقی کرو اینجا حسن غایت معلوم میشه. تنظیم او تلاوم نمیاد چون قضا و شؤل و به عمل الهی است به ما و اما اگر آن ام قابل تکلیف باشه که ما الهی بله به احکام الی لعلهم لعن باها یعملون بی احکام رو برای مردم برام بکنی شاید عمل بکنن دلیل کلام علاکونی محکوم به او قبلها که وجوب باشه یا استحباب باشه و نکته اینه که قایدت برای قایتی که موجه برای ایجابه یک امر دیگری خودش باید واجب باشه چون قایدت دائما محدد خیره اگر اون فعل واجب بود و این قایدت سبب وجود اون بود خود قایت هم باید واجب باشه یعنی حذر باید واجب باشه نمیشه بگیم بگی مثلا حذر مستحب اما انذار واجبه این معنا نداره بله این پس بنابر این این مفاد مبارکه مبارکی به هرگاهی میشه، ولی یه اداره جوئله هم لیح درو، در لام یح هزار ها چون هزار درم ها واجبه بعد از انزار وارد هزار مکان مسلمان، ان این کی داری شیعی نشد؟ هزار معنی خوف نه به معنای رسامر خارجی. یشون میفرمان که بله بلیش هم فهمدیم ولی انصاف انه دلالت حاضر آیه علا حدیت الخبر اوهر و اکم می دلالت آیه نبه علیه ها لکه انصافا عمر بحثه یعنی اگر آیه در مقام سعخرش نکنی در مقام بیان ترد و موسو انصافا آیه نبه دلالتش بر خصوص خبر اجلا در این آیه و اوزه چون این آیه به حال تفکر فقهی الدین داره عنوان تفکر در دین داره لوغا نفرمین این کل فرقه المنطاعه داره که مثلا افرادی برن از بحث خبر واحد نقص درش مسبب نیست یه دونه اش تو یک جایی دیدن که امام همونجا نشو دارن نماز اینجوری خوندن میگن بر ما نخل در کار نبوده تفکری مطرح نیست انظاری مطرح نیست اصلا اون سیاق این آیه مبارکه با مضمونی که با اون که مراد ما در وجه خراره مخصوصا در روایات ما که بالبن افراد ایام حج عمره مکه و مدینه مشرف می شدن مطالبی رو از امام شدن ادهشون فقید نبودن ادهشون فقید بودن می برای علمای شیعه و فقهای شیعه در کوفه نقل می اینا اون مطالب رو ذکر می کردن کتاب شیعه از این را درست شد انصافا اگر ما باشیم عنوان احتمالی آیه 90 اگر اون مشکلاتش نباشه دلالتش واضح‌تره تا آیه 9 چون این آیه چند تا قیده که بعد الغا اون ها رو بکنیم و الغا اون خصوصیت ها خیلی مشکله یعنی واضح نیست حالا واقعا نظر بحثایی که بعد در مورد تفسیر آیه خواهیم و من ازاله قد او در استدلال رها و حالا ایشان چند وجه جزئی کلا ما در حد سرعت یعنی می‌خویم یکی این که این آیه وارد است برای وجود تفکک و انذار سر ناظر است به انذار و تفکک ما یاد بگیریون و انذار بکنید و انزار بکنی. در ناهی تفقهش اطلاع تو ناظره اما در ناهی حذر ناظر نیست یعنی بیان در بیان از این جهت نیست و لذا ممکن است بگیم که حذر در وقتی واجبه که ام برای طرف صدا بشه حالا ممکن است که رفت مدینه خبریم هم به مرگون گفتم برای مرگون علم پیدا نشده آیا ناظر بی اینجا نیست ناظر بی این نیست که برای شما علم پیدا نشد بشه یا نشه شما باید تعد بودن قبول بکنید. آیا ناظر بی که وظیفه شما تفکره وظیفه شما انذاره و این امید هست که این انذار شما تأثیر بگذاره و جامعه عمل بکنه مراد آیه اینه اما جامعه عمل بکنه به این معنا که مطلقا و علم پیدا نشه این نیست بله فلا اطلاق اله ها به نسبت و وجوب الحذر ولقدرالمتیقنمه ما اله هسترالعلم به مطابق اتا قول الواقع این قدرمتیقنش اینه پس آیه شامل نمیشه تعبد رو ناظره هم به همان فهم اغلایی فهم اغلایی هم ناظره هم به جایی که انسان برایش علم بشه رفیع اولا ایشون چهار تا جواب ظاهرا دادن و را بعد اولا مثلا ایشون میگه اگر فرض بکنیم که قایه در مقام بیان حد از حیثیت حزراندا اصل اولی که متکلم در مقام بیان باشه ما دلیل اصل کجایی من نمی‌فهمم بله ل استقرار بنا الاغلا علی ظالب ما در چه خلافه خب اینجا میگم قریبه این هم همینه که شما وقتی تفکر پیدا کردین اومدین گفتین شعر فقها هستند میان مکتب رو میگن منظور بش اول نمی یعنی میگن آقا فرید اشتباه کرده این فقیه درست نفهمیده این هست این چیه این ترجمه از منو استاد که اصل ولی اصل چه اصل این معنا وقتی چه این مطلب واضحه جای رو تو اصله حالا به هر حال شما برای نادر مثل ایشان هی اول عثمانیان سال 3 رو میخونیم به واسه چون برای احترام ایشان و انصافا نم این رو من قبول دارم که کلمات مرموم اصطاق یه خلاصه ای از انکاس مکتب نجب این صاحب ایشون جمع کردن از خوبی های ایشان خیلی مطالبی رو که تقریباً میشه و از زمان شیخ انساری رحمه الله مفهر شده با این نهر جدید و بعد مخصوصاً مرموم نایمی ایشان اوناها رو جمع اطور کردن خیلی مطالب که خیلی همچین دوره از مثل کلمات مثل ندارم. و عمدش همون خلاصه تفکر مکتب نجف به ایشون جمع از این جهت خوبه برای مراجعه آبه بعد ایشون میفهمه و از ثانیه اندازه مبارکه نقطه دیگر که ایشون فرمودن که ما باید بگیم آیه در مقام بیان وظیفه جمعی مسلمی یک عده از مسلمی میرن تفکخ میکنن انزال میکنن میان خوبشون انزال یه دیگر که از موسیم خب نه اصلا تفقه حکم عمل می کنن ایشون میگه ظاهر آید باید وظیفه همه مسلمان ها باشه اگر بناباشه وظیفه همه مسلمان ها باشه هم شامل حال منظر میشه هم شامل حال منظر میشه پس همچنان که انزار و تفقه واجب است مطلبن حضر هم واجب است مطلبن این هم نقطه دوبار میشیشون استود کارشون و هم ان ظاهر الايه ترتیب به وجود به حذر الان انذار این همون رابطه است که در بخش مفهوم وقت هم گفته شد ظاهرش اینه آیه مبارکه حذر رو بعد از انذار مباشرتن آورده بعد از انذار چیزی دیگه نیست اما این که بگیم انذار باشه و علم پیدا بشه و حذر باشه اوقات دیگه متصل بر انذار نیست و ما هو انذار ظاهر آیه اینطوره که حذر بر از البته این جوابش از کلماتی که الان از سر مرض نه حرکتام واضح شد چون سر از بله حضر در بر هست مثلا هزار خوف تنخسانی است انسان فکر بکنه تعامل بکنه بررسی بکنه نه مراد عمل بکنه چون حذر رو عمل گرفتن آی خویی چون حذر رو عمل گرفتن اینطور اشکال میکنن جواب اون آقایون هم واضحه حالا من اکثرن خیلی فقط اشاره میکنم که چند نوشتن برای که اول مراجعه کنم بله رابعا ان نحو على تغییر تسليم ان اعتبار ال علم في وجوب الحذر یوجب تغیید با تغییر به که ال پیدا بشه و این مشکل این است که اگه تغیید به به صورت علم لا ممکن ال با به حالت تغیید نو به فرد نادر این معناش تغیید به فرد نادری که ال پیدا بشه باو مستعجل مرادشون علمی این معنای نیشی در ذهن آی مراد اون آل که علم یعنی وقتی یک کسی مطلبی رو اگرد از ایمه از رنبر نقل کرد ما نگاه بکنیم اگر شبازه معیدش بود قبول بکنیم نبود قبول نکنیم مراد اینه علم و غرفی اینکه ایشون تغییر بفرد خب از سرم بتونیم امر کاملا واضحیه که ما فوقهایی داشتیم در شیعه بودن, در سنی بودن. فقیه بودن درس خوندن، زحمت کشیدن من از به ادری از خطاوشون عمل نسده یعنی فقیه شازه از آیه مبارکه در میمیاد که شما حضر برای مطلقاً واجبه <تصفح> از آیه وارد بودن در میاد اونی که میگه یا در خبر اونی که در خبر اشکال موشده میگه درسته این آه رفته مدینه از امام مطلبی رو شیده عرضه نه رفته هزه خیلی خب سلام نه مثل اینکه دو نفر یه معارضش نه عمل کردن اصلاً اینه که فقط تو بحث کجا اگر از خبر ثقه یا از قول فقی وصول پیدا بکنیم علم اورسدانه که محل بحث نیست که اون اینکه محل بحثه که ما از خبر او وصول نیاریم پیدا نکنیم بلکه شواهد برخلاف داریم اگر کنید مثل روایتی که مشایخ ایراد گیرن بزرگان اصحاب آتش ایراد سن شواهد بر اگر آمدن گفتن اینجاایی که شواهد برخلاف کلافور عمل نکنیم این تبدیل به فرد مسته به فرد نادر کود تیل نادر بهقکنیم. یک کسی رفته در حد سی سال تو نظر در مو تو حوزه ق در خوه برگسه در فر 5 هزار سوای میده س تا فوا 16 ما به این فوا عمل نکنیم به خاطر که شواهد تایید نمیکنه با خودشرری از این باشه. حالا فرس اینطور این شما مشکل داریم تیل به فرد ناده شما که به فرد نادر و اون مستجنان چه ندرتی داره و چه در روات که الان ما شده خب ما روایت داریم سیعه و در مسادر و خوب هم آمده سنده و عمل نکردن از خواه حتی مشکلی داشته دیگی این اگر بگیم ما در اینجا عمل نکنیم حذر نکنیم این تقییدو به فرد نادر نیم انده مالا مراد استاد یا مقررشون تقییدون به فرد نادره. اگر بگن آقا ایشون احتمال میدن مراد عز علم اون علم منطقی احتمال صد درصد یک درصد احتمال خلاف نده به نظر اون چیه میکنه به ذهن ما ایشون علم به این معنا آمده نه علم به معنای حجت اوغلایی علم به معنای وضوح اوغلا به معنای وضوح و اطمینان نه خصوص اون علم شما بگین ترویج اون به فرد ناداد ما وضوح و اطمینان بگین پیدا نمیکنید بلکه وضوح به خلاف این مراد از علم میگه این تعبیر که بگیم لا هم یه هو در این صورت هزار واجبه که وصول پیدا بکنه که این حکم الهیه حالا فرضش رو تایید که مرجوم اثر مرزا و اعتقادش این موجه مشکل نیست تعبیر به فرد نادر نیست این تعبیر مرجومه آی قوی به فرد نادر نیست تعبیر به فرد نادر ما الان فرض کنیم 200 تا ضرر داریم که 30 تا رابطه مشکل است تو 20 مشکل است بعد رواست ما همه مسلس و اینقدر ما سرها رواست صحیح و معتبر داریم که از خواب عمل کردن فسیل ده تا پونزه تا بیست داره داریم که از خواب بهش عمل نکن صحیح است هست اگر ما گفتیم بین ده تا بیست تا شما حضر نکنیم تقیید به فرد نادر نیست چه طرفی به فرد نادریه و شاهد قریب شد که مشهور هم کار کرده راهات این کار نکرده هم مشروع هم صدها نفر از فقهای ما در طول تاریخ همین کارو کردن این به فرد ناظر چه فرهم ناظری تعقیب داره عمل شد اما نشد به واسطه میذایی مرا عمل نگرد نه اراضیه نه نه میگه عمل بکنی در صورتی که عمل مصوب. کردن موی فواضل و چه شد میگه اگه شما وصول شواهد معین بود عمل بکنه با بله خب یه واسطه‌ای هم داره مثلا 2 سال بعد شوالید شواهد, داره. داره شواهد خیلی رو و لذا در اون جای کرواش شوالید هم اجازه رو فرما در اون جای هم کرواش شواهد پیدا نکرده اصحاب الا ماشاءالله سرها صحیح موارد اصول عملیه کرده مخصوصا بعد از زمان علامه محقق هیچ حالا عمل اصحاب کرده نمیرا نه ایشون میگه تقلید و ما ولید عمل نه اولا ارشکردن که فکر بکنی ارشکردن سید منظوم میگه یحذرون حذر حذری تعامل بکن فکر بکن در مخالفت واقع واقع با. لذا سر میکنه. تفسیر میکنه آیه گفت نه يحذرون لعلهم يامنون سید منظوم اشکالش اینه که آیه گفت لعلهم يحذرون نه گفت لعلهم یعملون حالا آیه خو و نایم اینا که نه یه يحذرون یعنی عمله یک مشکل که اصلا یحذرون یعنی احمدون به, به،, به تنظره انذار بعد از انذار انسان حذر میکنه میگین آقا اینطور گفت من ببینم راست این مطلب که گفت يا نه گفت که این مطلب واجبه این گفت این مطلب حرامه من دارم برایش میکنم درست يا نه حذر استاد مرزا هر بشيره استاد مرزا عدي هم هر چه علم عرب عدي هم هر چه نفهمو درلام یعمنو اول خوی تمام اولن و ثانیان و ثالثان همش تو تفکر این یه اگر میشه در قابل عملو خب حذر همین معنیش نه یعنی اگر شما ببینید اگر پیغمبر میگفت چی میگفتین حذر میگفتین می یا عمل میگفتین میگه پیغمبر منظر نیست، نه میگه پیغمبر منظر نیست. شش. وقتی پیغمبر گفت این کار واجب شماش کار میکنه، هزار میتونی یا عمل میکنی. اما امر جدایش میگه که میگه اگر فریب شما ما هزار بیکنی، عمل نمیکنی. یشون که هندوگریه. اون کسایی که اشکال کردن، اینا هست اشکال. ارث کردند تا علیه اشکالات محدود کردن. یک اشکالش اینه که پیغمبر هم منزره. پیغمبر که میگه نیست. شما در مقابل پیغمبر چی میگی؟ این لعله که تحذر یا میگید نه احمد با ما رسول الله میگه اینی که شما را دیم فرق بذاشتیم بین یکی سی که تفقه درزین کرد لعله هم یحذرون خود رسول الله که فرمود یجبان یحذر لعله هم یحمنون حتما یجبانی همون احمد این نشون میده بین این دو دوتا فرقه بین این که پیغمبر باشه یا غیر پیغمبر بین این درسون دوشن تر باشه منم پابرهنه اینه که انسان احزار بس خبری حالا اجازه بدید من مطالب چون من, من, من همه مطالب امروز نگفت اجازه بدید یکم میگم مطالب واقعا خوب بکنیم بعضی مطالب دیگم در اسناد بگی اون وقت بحثش من ایراد دوم این که انذار به معنای تخویف من العقاب و وظیفه واعظ و مفتی است در مورد این میشن که واعظ عرض میکنه که روز قیامت این ترس و مفتی این ترس و این بله به خلاف نقل روایت چون در نقل روایت انذاری نیست بقید یه خدمت امام بودن ما نجور فرمده این اشکال دیگه این اشکال هم اشکال معروفیه نه اینجا در مثلا اینجا آمده وفیه انر راوی ای قدیون به به نقله راوی هم انذار داره کما ازا نقل روایت اندال درسن علا وجوب شه اینو و علا خورمت شهیم یه خدمت امام بودن فرض که مثلا گوشت حرام مثلا. تو این نقل ها ده روایه انزارون زمنیون بلعقاب علا ترک عدل فعل این هم ترک انزار حساب میشه بله و ترکی در این جهت نمی کنه که انزار زمنی باشه و نباشه اون ایشون میان اینطور میگه خلاصه حرفی ایشان پس اگر راوی جای حرام یا واجب نهار کرد انزار هست اگر غیر واجب و غیر حرام هم نهتر در به فرض، این هم جواب خلاصه جوابیشون. بعد ایشون فرموم ها به علا تقدیر کنه لآیه نازلتن في مقام تشریح. این که آیه نازل در مقام تشریح. خب این ظاهر استدلال هم همین آن من تشریح آن خوشی توی این مسئله رو ظاهر آیه همین همی که در معاین استدلال بینید تا این در مقام باشه. و اما بناهن علاقه اونها کاشه بطرن حجیت خبر از سابقه علا روزول آیه مرادی ایشان از سابقه علا نوزول آیهن حجیت اقلای خبر یعنی در بازار اقلا خبر حجیت داره و اناها سی قد علا نهو انتکون حجیت خبر محفوغن انها قد نوزول آیهن تماهو از ظاهر غیر تعجب از ایشان این مطلبی که اون در وسط پردن تا آخر بو التزام داره نیانه اما اگر ما بگیم نه آیه ناظر به همون سریه اوغلایی است فلا نحتاج که به عدم القول بالفسد اذن ال آیات شریفه علی حالت تقدیر بله کاشفتون فتن الخبر خبر علی الاطلاق چون تشریع نیست کاشفیت پیدا میکنه چرا و ان وجوب الحذر اندل انظار انهه ها منباب تطبیق الکبر کلیه علی بعض المسابیه اون کبرای کلی که قبول خبر از مطلقه آیه تصویرش پره در جایی که وجوب باشه یا حرمت باشه اما کبرای کلی میمونه البته اینجا ایشون توضیح ندن من اصلا سابقا توی کلمات ایشون تو آیه نفت نه هم یک مطلبی شبیه این دارن اصلا اونجا هم اشکال دارن نخوندن اینجا هم این مطلب ایشون دارن مراد این است که حجیت خبر استقاق اغلاییه چون اغلای آیه ناظر از در همین حجیت اغلایی چیمیشون عبیدشون اینه آیه ناظر از در همین حجیت اغلایی و در حقیقت این حجیت اغلایی با یه مبارکه شده الا این که چون توش کلمه انزار آمده انزار در همه خبرها نیز در خبره که وجود باشی و حرمت اونجا انزار هست روشن شد ایشان یک کمی عبارت ایشان حضرت داره اضافه در اگه تو ذهن ما این اینطوره که این آیه مبارکه رو ما باید در سریه اوغلا معنا بکنیم در اون سیره و اون سریه اوغلا حجبه خبر سقر درک کردید اون حجبه خبر سقر در سریه اوغلا فرض کنیم جز وجود باشه یا حرمت باشه یا استحباب باشه که فرض نمیکنه تاریخ باشه ادبیات باشه لغت باشه شرح حال باشه رجال باشه فرض نمیکنه خبر خبره علاوه بر خبر, خبر, خبر درست لكن آیه مبارکه چون توش کلمه انتظار آمده. این کلمه ای انذار منشع شده که ما خیال بکنیم که این حجیب مختص است به جایی که وجوب و حرمت باشه آیه رو اینجوری معنا بکنیم آیه به جای تعد به ارجاع به سیری و قدار. این نظر مبالکی ایشان که یک سیره هم به آیه که اضافه فرموندن از کن من اگه یاد آیه باشه دیروز یه نکته باید کردیم روش فکر بکنیم. به خود آیه نفر اینها برای حجت خرب نیمتونه تمثب بکنم. شون خدا بزاهر آیه نفره. یه چیزی باید به زنیم رو یه چیز خارجی باید بهش اضافه بکنم. یا مثلا عدم قوله به از کنم آیه نفر ظاهرش این از که ادهه برن برای تفقه فردیم رو برگردن. این شده رو به نفل خبر این رفت مخصوصا اگر ما قبول بکنیم تفقیه در دین هم در واقع خارجی تنها نبوده اضافه بر تفقیه در دین مثلا پیمنبر اکتر میزن تو وکیل, و... وکیل از سر ما هستی تو نماینده ما هستی تو انت سقطی منخه بلی اله یعنی فرس مثلا امام مسلم ساملاله که مسلم رو پرستن و بعد فقط ارسل تو اله کن سقطی. یعنی یک تأیییم می آمد. یا مثل حوزههای ما ها که اجازه اشتغال، اجازه روایت یه چیزی بشه اضافه می شود. به مجرد تفقه هم تمام نمی شود. لا لا نه چه رسوی من از کردم حجیت قول وکیل و نائب و کسی که از طرف انسانه یا امیر یا مثلا استاندار این حجیت قابل قبول، اینجا بحث نداره، داره شون این اصلا از خبر نداره خودیه اهل خبرن قابل قبولیت اونم ردی بودی به خبر نداره ولی دا از کردیم اصلا از خود پیغمبر اکسان در حد کده به حامل فقه هنه الاملیسه به فقی چند دفعه از کردیم اولین کتابی که در معرفتال حدیث نوشته شده مال اون به اصطلاح رام رام اسمی که دارت المحدسون فاصل خاصل نکنیم خاصل بین راوی و وایی وایی این یعنی فقید یعنی ما یک راوی داریم یک وایی داریم اونی که الان محل کلام هست راوییست نه فقید آیا باره که نازم فقید لیون ورغوم همه ما باشیم و زاراییم و رفتی باشیم و خبر نداره؟ یعنی به خانت داریم چیه؟ نه،, نه چون تفقیم دارن به خبرن یا از طرف پیغنبر اجازه گرفتند؟ این می ارسال توه لیکن. یا وقالته. خیغمبر حکم می آمدن احالی اوزن. تو برو به طرف اونها مبلغ باش اونها خبر بده اونها مسئله برانه بیانه. امه علیه همستان فرمون در ال علی علیه فعلی که فرمون در جالس. خب این چون امام تایید فرموده. این بحث موجه به خبر میهید. قیقت فرمودی؟ یه اشتباهی توی کار پیدا شده ما باشیم شما آیه 90 این که اهل خبره است به تصدقون چیزی این که اهل خبره است و واقع خارجی غالبا به خبریت هم اکتفا نمی کردند می آمد تو حوزه اجازه اشعار حوزه روایت هم تبیینش میشد اما این که شما هر دینی آیه تراسوا کنید به مجرد خبر این نمیشه لذا دقت بکنید مرحوم استادان و همون غوغ رسولی ببینید انسان اصول خودش رو بفهمه داره چیکار بکنه روی وصولیو و یک دغدغه یک می کنه می دونید که آینه میکنه زمینه کردن مساله سیری و رو و و ان شاء کرد اصلا ثابت نیست اوغلا سیری در اموری که ترویج از سرضه داشته باشند مگر که به اخلال نظام برگرده اگر برگشت به نیست پس اگر بیان عین حجت نیست خب اخل... واقعا خلل نظام نیست اما اگر, اگر خبر ثقه حجت است فازین خبر ثقه 60 مورد هفت مورد عشد مورد ایجاد وجود وصیق، ایجاد وصیق می کنه احلم سی موردش سی درصدش احراز وصیق نشده. خب میگه ما رو این مشکل نداره اخلال نظام درسته. این خلاصه اشکال ما به سیره ق아요 میگن سیره ای از اوغلا در اموری که طبيعت صرفه این روشنی از اصل سیر روشن می. مگر برگرده به اخلال نظام. یا صعوبت یا عوز یا حرج و مشکلات اجتماعی خب مردم زندگیشون بگو آقا من از کلامت علم پیدا نکردم باز برو سوال بگو تو واقعا دیگه زمن نمی‌زنی یعنی ساقان به هم نمی‌زنه بگه این پیدا کردم نکنه نمی‌دونم باز مصاحبه واقعا حس کنم باز برو سوال بگو این دیدمم باز زندگی رو بند پس برابر این یک راه اینجا استاد رخته و اون زمینه کردن سیره رو روی اعتقاد خودشون که سیره هست سیره اوغلا هست ولی حدیقدرش که تعبده است و شارع این سیره امضا کرده شد این همون بحثی که من دیروز عرض کردم انساب قضيه آیه اونطوری که واستبرثی با نداره باید یک زمینه بهش اضافه بشه. بدون زمینه رثی به چرخه خبر نداره. اینجا مدرسه فرمودشون زمینه کردن اسیره رو. خود در زمان نزول آیه تفقه در دین برای اخذ و رو روایتی یعنی نه در زمان نزول آیه. در زمان نزول آیه تفقه در دین در بوده خصوص نقل نمده. می رفتن اونجا قرآ یاد, یاد می شدن اخلا همه یاد بزنه؟ می گفتم و ضا اصلا وقتی تریرون میفرسته این معروف که عمر می گفت که وقتی اقواز میفرست می رو من بین شهر میرسن مردم اون قر علاقه به اسلامدن تو نه اونجا گیر زور درست سکن. همون شیه هم مشهور همی که هم اون انجام بدهبرا خود حرفایی به حساب عل ها در درآلی ند. پس این وجهی که ایشان اوورن تمک اضافه بیره یه نکته صنی تو عبارت ایشان هست. که متاسفانه اون نکته بررسی نشده اون نکته رو ما به عنوان بیر مستقل هم میتونیم قرار میدونیم و خلاصش اینه که ایشون میگه انذار در راهی هست اگر خبر دازه بر حضور یا بر این قرمت این خودشی یک رایی مستقل غیرتی میتالیشون نوشن و خلاصش اینه کسا انذار یعنی چی در اینجا شما دقت رو کنیم یعنی چی میگنیم ایشون متاسفانه استاد کلماتشون جمعه جورو می کنن اون زیر بناها رو توضیح انزال دو معنا داره با یک انزال یعنی بگن برای این عمل شما فلان عقوبت مفرخت میشه. شه یعنی این. اگر این کار نکردیم چی این عقوبتی داره حالا یا در دنیا شلاغ می یا در آخر جمع عقوبتی داره اگر این باشه این داد بر وجود می چرا؟ چون ما کردیم، اصلا در اعتبارات قانونی نقطه نیست که کنه بشن به طور کلی در اعتبارات قانونی اگه خودم که وقتی محتراش نمانی به مجید بشید اعتبارات قانونی شنش اینه به بساطه اعتبار قانونی در میاد که حتما اعتباره از جزا داشته باشه اصلا تعریف احکام مولوی احکام مولوی عبارت از اعتبارات قانونی هستن که موضوع هم برای احکام ج جزا احکام مولوی عبارت از تعریف اعتبارات قانونی که هم برای احکام جزایی اگر جزا نباشه حکمی نیست اصلا اعتبار قانونی اگر گفت این کارو رو مالیات شدین حالا نریم چی بود چی بود گفتیم چهگه همیشه این است که مشتمل بشه بر جزا اگر جزا نبود حکمی بوده قصد بکنم میاد این کلمه استاد ناقصه ما به این ترکی بکنم وقتی که آمد گفت انذار واجبه حضر هم به معنی عمل واجبه این معناش کنید که شما بدانید در اینجا جزا هست اگر دانستین جزا هست پس معنیش که اعتبار قانونی هست چون اعتبار قانونی اجتماعش بلید نه و از جزا هست دقیق بکنید این لحظه از این از ممکن است دقیق مستقلی قرارش بدیم خیره نیجا بهشون زمین زیادی روشن شد نا چه از کلمه ی لیون زرود این طور بفهمیم که مراد از این اون عقوبتی که بعد این مطلب باغ میشه اگر واجب ترک باتون اگر حرام اتیان حرام از تو به طب عقوبت بفهمیم جذا هست از وجود جذا بفهمیم اعتبار باغ می هست قرار شدیم این دکتر این شکران حتی باعثه برایش ایجاد شده این معنی خارج کردن که اصلا تکلیف ما از اون حکم واجبی عوض میشه به مبدای اولی دکتر این دکتر شریف لطفاً راوند نهایی اومد من نخویدم قواعد رو مطالعه مراجعه کنم این مطلب رو به صورت خیلی تومده شو در کلمات هر حزم سازمانون براتون خفوندید چون از این مطلب اینطور در خوب دقت بکنید این که آخه این مطلب رو چه جور راه میگن که تکلیف عوض بشه تقریبش اینجوری وقتی آمد در شما گفت لحمر حرامه امام صادق برمیدن گوشت خرگوش حرامه یعنی اگر خوردیش عقوبت داره قبضه دقت عقوبت که الان ثابت شد قبضه قردیم چون لیون لیانز هم اداره شد این زار است که برخوردن گوشت خرگوشه این عقوبت اگر ثابت شد عمل به این خبر واجب میشه معددای خبر میشه واقع چون الان طبق این خبر تطرت تبرو ققوبه بر خوردن گوش هر گوش خوبده خرکه همین که تطرت تبرو ققوبه حفظ میشه نمیخواد در واقع باشی این که میگه حکیف عمل میشه چند دفعه ارپیار عرب. دار ابن هرز اصلا میگه اینا انزن نه نزن نزه اینا لحول حافظون این ذکر ولحول حافظون شامل اخبار هم میشه نه آیاتون مبارسی چون که شامل اخبار هم میشه کل حدیث غواب و عضل و عضل علم نبی اینم مشمول آیات خیلی لحظ و عجوه غریبی یه سلام براتون یا آیاتون تکلیف عرض میشه یا ما معذر هستیم به این حسن. نقطه فرمین روشن شد میگن اگر خبر آمد که این حرامه بوده این میشه انزام اگر انذار شد، عمل بگیم انذار واجب در نامی احضران پس شما در خوردن گوشت خرگوش عقوبت دارید. هر جا شما حکم جزایی داشتیم که برای یک اعتباری بار شد اونجا میشه حکم اولادی پس شما حکم اولادی داری که افران اولاد مولادن من احتمال میدم آرکوی انذار رو این معنا در ذهنشون بوده این خودش یه راه استدلال مستقلیه که در خلال کلمات نایی تحجیب کردم کنم ناییش دوری این مسئله اینجا آورده بگه طول می کشه. این یک نکته خاصی خودش که ما از انذار اینجور بزنیم من صابقا هم چند بار عرض کردم به ذهن ما میاد که اصلا اصل این استظهار درسته باشه فکر کنم آنجون ظاهراً انذار مراد انظار به کلید شریعته نه به دانه دانه پس بحث دیگه در اینجا اینه اینشالا خودشون در منظر سه که بفرند لیونزر و هم اداره جاو الیهم انذار به اصل شریعت که راه سریعی دینه راهی که رسول الله فرموده این زن که انذار باشه خوردن گوشت خرگوش شدید دکتر ما کنیدیم لیتفقه هم خدین اون تفقه در کل دینه لیتفقه هم خدین بعد که دین تفقیه پیدا کردن انذار رو کنن به مثلا بگن شما در, در دیگه مثلا راهها راه های هست مثلا کمونیست ها میرن مادی ها میرن چی میرن با ها میرن, میرن هندو ها میرن این راه ها باطل راه درس اون که رسول الله هسته مراد اینه انذار به دینه نه انذار به کل خوف یعنی شما بیشه یعنی شما جزئی ها توش نه خواهید اصلا <تصفح> و لذا شبیه این بحثم شبیه این بحثم ما چند بار را حرف کردیم ما جعن علیه کبخ دین من حرج ظاهرش اینه که احکام دینی مهمیه به حرج میستن این یک معنا، یک معنای که الان قاعده ی حرج تو زهر فوقها هست تو زهر فوقها اینه هر حکم الانی که دانه دانه احکام, احکام احساب کرد منتحی به حرج بشه اونو حکم برداشته بشه بیدیم؟ یه دفعه میگیم مجموعی دین حرجی نیست ماجه علیه کم فدین مجموعه دین حرجی نیست یه دفعه میگیم ماجه علیه فدین من حرجی این یعنی احکام مثلا وزو تیمه اص فرصان انفاق بر پدر انفاق بر پسر مثلا حجوب کذا حجوب صلا تمام این احکام دانه دانه هر کدومشون رسید از حضه حرجی اونجا برداشته میشه دو تا من هست اون قاعده اینه که هرش دران در ذهن شما هست معنای دومه اما ظاهر آیونواره که معنای اوله شریعت مقدس مختینی بر هرش بین ما جهل علیکم فکر بینم هرش لذا اینم در این نقطه کلام و استاد در اشکال دوم بله. بعد بعد یک اشکال سوم داره که تقریبا شبیه اشکال چهارم اشکال چهارم شبیه اشکال قبل خیلی نداره اشكال چارو ماخوذ در آیه عنوان تفقه فیکون هدر واجب در اند انظار فقيه به ما و فقيه چلا یشمل انظار ال رابع ما و رابع ببینید انظار رو گرفتن به معنای همون که الان عرض کردند. مثلا گوشت خرگوش حرامه انظار به این معنا که اگر گوش خرگوش خوردید عقوبت داره فیکون مفاد در آیه حجیت ال فقیه للامین لا لال به الخبر. عدم في المقام لعدم عهد بالآخر. و لا یوم که از تماس شک به ادم القول بالفاس فل مقام ن ادم سبای آهده الامرن بالآخر. زن شئت ثبوت ان القول بالفاس لبینه حدیث فتح الفراتی به حدیث الخبر موجود در مسجد مرتضیان خیلی زیادند ایتیوسانی است. فلا یا جلوت دلیر از حدیث. و فیه این که تفکر فی زمان المعصومین سلام الله عليهم لم یکن به هدایت سقوط موجود فی زماننا. ایشون کنان تفقق در زمان این احتمالا شاید مثلا غلط مسئلی باشه آیه مبارک زمان رسول الله کار به سال سال پنجاه نداره باید از زمان رسول الله حضور شروع میفرده فه اینها حسرت من کسرت روایات این آیهی که نباید اونگی رو معنا بکنم اون زمان و تا آرزها فیل و قلتها فیل معاملات فسدف و من کان کانو یست و علیه ملفقی به مجرد سماع الحدیث حفظی صالح شوخی‌کننده باشن خب فرض کنید کسی بقال بوده، شهام بوده، خلال بوده، دیوذر هر کاری جلال بوده، حلال بوده، چند شغل مختلفو دیوذر عرض کنه. این از امام یک چیز حدیث شینده به مجرد سماع حدیث این صحیح بشه. لکونهم من اهل لسان. خب این تعجب‌آور از ایشان خب خب ما الان عرب دل میگه، مثلاً زمان ما عرب بوده، الان میگه عرب نیست، مثلاً مجرد که ایشون عرب شد، دیگه مثلاً صحیح میشه. ظاهراً شوی فرنده فکان و یعرفون معانی کلماته او الانمی فهم. فرم میکنه فکان و فقه ها تماورده انهم انتون افقه ها ناس ادا معانی کلام نام. ناس اینجا مراد سنی است. یعنی ما شد در کلام همون تقییه هست توریه هست کم زیاد هست یک ذرافت های هست شما اگر دقت بکنید رو بشناسید افته همید ادا نه اینکه مطلق هم عرفتون الان یه حاله بعدی شو به اضافه بعد از حجیت و خبر راوی الفقی به مختصر آیه سبب از حجیت و خبر راوی غیر الفقی بعد از قول برفس بازم بحث هم یک زمینه و راوی فقيه ما در میان فقهای ما که بزرگانی هستن ذکر کردن از اصحاب اجماعی رو که کشی او بردار ما خود شما کس دیگریه. این ناظر به فقها تصمیت تسمیه ها من اصحاب اریعرزه روات زیاد داریم فقه ها این شیش و این کیشو بفرمایم بعدم مقام اول بحث انصافا مطلب درستی نیست از کردم من دیروز عرض کردم به جای این بحثا این بحثی رو که من عرض کردم نافعه تره این نکته این بود که بعدها از قرن اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم خود مصاغ آیه در باب حدیث پیدا شد نکته فنی اینه حالا ایشون به راه دیگه رفتن چطور نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفق قبول همین نفر بعدها اتفاق افتاد اصطلاحاً ار رهلت و فی کلق الحدیث پشون گفتن همیشنان که ازدهی می رفتن حووز درست می و علم می گرفتن ازدهی هم بالا می شن. کارشون هنگی بود می شنن نیچا مثلا 20 ویستا محدث بزرگ می از اون می نشن بعد می رفتن, بعد می رفتن مثلا اینکه می بعد پرستو شام ب یکی از نقاط مصفت در اون زمان این بود که شنس کسی رو رهله باشه کسی رو باشه دیروز ارز کردم بعدشون تا دو هزار استاد برایشون نوشتن این دو هزار استادن اجازه نبوده میرفته از سماح حدیث میکرده بود اگر اون مطلب رو اینطور که من تحلیل کردم بهتر از این داریت که آقای پیش ردن از کردم این نفر همچنان که برای تفقه شد، برای, برای تفققه ش تا به نقل حدیث هم شد این منشأ این شد که این آیه نقد به حدیث هم بخوره به الا ان شاء به رضیعن که عرض کردیم آیه نقد با بحث وجیزه خبر واحد هیچ رقتی اساسا نداره باید با اینکه چی زمینه کرد به الا خود آیه مبارکه ناظر نیست این مناقشه اجمالی با مردم استاد یکی دو تا در خلال اینا گفته شد فرض ان شاء جمع اولا راجیب خود آیه کسا آیه یه چیه؟ یه مقدار راجیب خود آیه وعدم راجیب مفردات و الفاغی که در آیه سار به ساره